حکایت یکی از صاحب دلان زورازمایی را دید به هم برآمده و کف دهان آورده. گفت این چه حالت است؟ گفتند فلان دشنام دادش. گفت این فرومایه هزار من سند برمیدارد و طاقت سخنی نمی آرد؟ لاف سرپنجگی و دعوی مردی بگذار. آجز نفس فروماگه چه مردی، چه زنی. گرت از دست براید دهنی شیرین کن. مردیان نیست که مشتی بزنی بر دهنی اگر خود بردارد پیشانی پیل، نه مردستان که وی مردمی نیست. بنی آدم سرشت از خاک دارد. اگر خاکی نباشد، او دمی نیست.